عزیزان، آیا قلب شما دردمند هست؟ اگر الان هم دردمند نیست، مطمئنم که لازم نیست به گذشته خیلی دور برگردید که ببینید کی دردمند بوده. وقتی دلهای ما دردمنده، خداوند چیزهای زیادی برای گفتن به ما داره. وقتی ناامید هستیم، وقتی مریض هستیم، وقتی در رنج هستیم، کتاب عیوب درد و درس آینده چیزهای زیادی برای آموختن به ما داره بیایید با معلممون همراه بشیم و به درسی که امروز خدا میخواد به ما یاد بده و چیزهایی که میخواد در مواقع دردمندی به ما بگه گوش کنیم به درس دیگری از مطالعه کلام خدا خوش آمدید اولین کتاب از پنج کتاب شعر قلب قوم خدا رو زمانی که در سختی هستند مخاطب قرار میده وقتی خدا کتاب ایوب رو مینوشت قلب دردمند رو در نظر داشت. محققین به نظر نمیرسه که مطمئن باشن کتاب عیوب کی نوشته شده و چه کسی این کتاب رو نوشته بسیاری بر نقند که کتاب عیوب قدیمیترین کتاب در کتاب مقدس هست که عملا قبل از پیدایش نوشته شده بسیاری گمان میکن که شاید نویسندهاش موسی بوده بسیاری از محققین بر این باورند که نویسنده هر کسی که میخواد باشه احتمالاً رنجهای زیادی رو مشابه رنجهایی که در کتاب ایوب شرح داده شده تجربه کرده. بسیاری از محققین بر سر این بحث میکنند که به خاطر سن ایوب این کتاب در زمان پاتریارکا نوشته شده. نویسنده به ما میگه که ایوب بعد از اینکه که رنجهای زیادی رو تجربه کرد صد سال بعد از اون زندگی کرد و بعد مرد. و به نظر میرسه که این ایوب رو در زمان ها قرار میده در مقدمه کتاب مقدس دیدیم که این کتاب و یا هر کدام از کتابهای کتاب مقدس اهمیتشون به خاطر نویسنده و یا زمان نگارش کتاب نبوده وقتی شما کتاب مقدس رو میخونید و یا یک باب و یا یک آیه رو میخونید یادتون باشه که باید دنبال حقیقت بگردید عیسی در یوحنا 17 17 در دعاش خطاب به پدر گفته کلام تو حقیقت هست بدین معنی که وقتی شما کتاب مقدس رو می خونید، مهم نیست چه قسمتی از اون رو می خونید. دنبال حقیقت باشید عیسی در یوحنا 7 به ما دیدگاهی داده که چطور به کتاب مقدس مراجعه کنیم او گفته اگر کسی به راستی بخواهد اراده او را به عمل آورد در خواهد یافت که آیا این تعالیم از خداست یا من از خود میگویم. گویم به گفته ایسا چیزی که و بودن کلام خدا رو به ما نشون میده اینه که وقتی به کتاب مقدس اشاره میکنیم حقیقت رو پیدا کنیم و اون رو در زندگی شخصی خودمون بپذیریم. به عبارت دیگه انجام اراده خدا ما رو به اون نوع آگاهی میرسونه که عیسی گفته. بسیاری میگن اگر من بدونم انجام خواهم داد. اما عیسی خداوند مکررن در کلامش میگه وقتی شما انجام بدید اون وقت خواهید فهمید. روی کرده ما به کتاب مقدس باید همیشه این گونه باشه. وقتی کتاب عیوب رو میخونید این سوالات رو بپرسید. این کتاب چه حقیقتی رو تعلیم میده؟ چطور میتونم از این حقیقت برداشت کنم؟ چطور میتونم از این حقایق در زندگیم استفاده کنم؟ کتاب عیوب یکی از زیباترین اشعاری هست که تاکنون نوشته شده. وقتی کتاب عیوب رو میخونید دنبال جواب این سوال بگردید. خدا در این کتاب قصد داره چه چیزی به قلب دردمند بگه؟ در هر گروه از مردم همیشه خیلیها قلبی دردمند دارند اگر قلب شما یکی از اون قلب دردمند هست به کتاب ایوب مراجعه کنید و بپرسید خدایا به دل دردمند چه پیغامی داری من دردمندم و می بدونم که پیغام تو برای دل مجروح من چیه نظریه ای هست که میگه کتاب ایوب تمثیل بزرگی از آیه ای کوتاه در عهد جدید هست عیسی موعظه سرکوهش رو در متا پنج شروع میکنه. و در آیه چهار همون باب دومین خوشابه حالش رو به ما میگه. او میگه خوشا حال ما تمیان زیرا آنان تسلی خواهند یافت. در عهد جدید شما تعالیم رو دارید و در عهد قدیم تصویرهایی از اون تعالیم رو دارید. کتاب ایوب تصویر این آیه کوتاه در عهد قدیم هست. کتاب ایوب به ما نشون میده که چطور قلبهای دردمند با برداشتن سه قدم به برکت و آرامشی میرسند که عیسی به ماتمیان داده. قدم شماره یک اگر میخواهید که برکت و تسلی رو که عیسی به و وعده داده تجربه کنید بگذارید ماتم شما شما را به جایی برسونه که سؤال درست بپرسید. شاید برای اولین بار در زندگیتون باشه اما سؤال درست رو بپرسید. وقتی در رنج هستید وقتی قلبتون درد منده میتونید سوالات درستی بپرسید و یا سوالات غلطی بپرسید. خدا میخواد که قلب‌های دردمن سوالات درست بپرسند. خدا میدونه که وقتی ما سوال درست میپرسیم شروع میکنیم به درک برکات و تسلی خدا که میتونیم اون رو در زمان‌های رنج و ماتم تجربه کنیم. ایوب وقتی قلبش دردمند بود سوال درست رو پرسید. در کتاب ایوب مشاهده میکنید که ایوب چند سوال میپرسه. ایوب سوال میکنه و سوال میکنه و سوال میکنه, میکنه و اما سوال درست رو میپرسه. سوالات ایوب سوالاتی هست که خدا میخواد قلب‌های دردمند بپرسند ما بر سوالاتی که ایوب در میانه رنج‌ها و قصه هاش میپرسه تمرکز خواهیم کرد کتاب ایوب دومین گام را هم به تصویر میکشه که شما باید بردارید تا برکات و تسلی رو که عیسی وعده داده درک و تجربه کنید. به جواب خدا که به سوال درست میده گوش کنید بذارید قصه های شما شما رو به جایی بکشه که از خدا سوال درست بپرسید و بعد به جواب خدا به سؤالتون گوش کنید. خدا در کتاب مقدس به سوالات درست پاسخ میده. خدا به سوالات ایوب پاسخ میده. وقتی کتاب ایوب رو بررسی می کنید، دنبال سوالاتی باشید که ایوب از خدا کرده. این کمک میکنه کنه که شما پیغام خدا رو به قلبهای دردمند بفهمید. وقتی اجازه بدید که رنج ها و قصه ها شما رو به مرحله برسونه که سوال درست رو بپرسید، و وقتی بذارید که رنجها شما رو به مرحله‌ای برسونه که به جواب خدا گوش کنید اون وقت قدم بعدی آشکار هست به پاسخ خدا به سوال درست باور کنید این سه قدمی بود که کتاب ایوب به ما میده تا بتونیم برکات و آرامشی رو که عیسی به ما تمیان وعده داده درک کنیم وقتی به پاسخ خدا به سوال درست باور کنید من ایمان دارم که اون برکات و آرامش رو دریافت خواهید کرد اگر می‌خواهید بدونید که ایسا در مورد چی صحبت می کرد وقتی که گفت خوشابه حال ماتمیان زیرا آنان تسلی خواهند یافت، سوال کنید، گوش کنید و باور کنید. یک آیه در کتاب جامعه باب هفت هست که خیلی مشابه دومین خوشابه حال هست. جامعه هفت دو میگه رفتن به خانه ماتم از رفتن به خانه زیافت بهتر است زیرا که این آخرت همه مردمان است و زندگان این را در دل خود می نهند. بقیه باب اون جمله رو توضیح میده و میگه چرا رفتن به خانه ماتم بهتر از رفتن به خانه زیافت هست. شما روزی خواهید مرد و بهتره که این رو مد نظر داشته باشید. بنابراین به این دلیل بهتره که به خانه ماتم برید تا به خانه زیافت. یادتون باشه که بنابه گفته کتاب مقدس شعر زبان قلب هست و قلب یعنی انسان درونی که به شباهت و سیمای خدا خلق شده و ابدی هست. در سر تا سر زندگیتون خدا انسان درونی شما رو رشد میده، شکل میده و انسان درونی شما رو برای موقعیت ابدی آماده میکنه. کدوم تجربیات هست که فکر میکنید شما رو به خدا نزدیکتر میکنه و سیستم ارزشی شما رو با او همسان میکنه؟ کدوم تجربیات هست که انسان درونیتون رو رشد میده و شما رو آماده میکنه در سرتاسر ابدیت سر با خدا زندگی کنید؟ آیا فکر میکنید که در خانه زیافت هست و در فراوانی و زمانی که اوزا بر وفق مرادتونه و یا زمانی که اوزا بر وفق مرادتون نیست و در سختی و تنگنا هستید. اکثر ما تصدیق میکنیم زمانهایی که انسان درونی ما رشد میکنه مواقعی هست که در آزمایشات هستیم. در زمانهای رنج. شاید رشد ما در زمانهای بیماری باشه و یا زمانی که به ما گفته شده به زودی خواهیم مرد. چرا مردم وقتی که کفن و دفنشون نزدیک میشه جدی و ج چیزی کننده ای که در مورد مراسم تدفین هست اینه که به ما آگاهی میده که روزی این اتفاق برای ما هم خواهد افتاد. قطعاً و بیچون و چرا همه ما خواهیم مرد. تنها فرقش اینه که کی، کجا، چطور و برای چی. همه ما خواهیم مرد. اما به اون فکر نمی کنیم و طوری زندگی نمی کنیم که گویی ما هم روزی خواهیم مرد. دائما سعی می کنیم رو انکار کنیم. ما با این افسانه زندگی می کنیم که شکست ناپذیریم. و تا ابد زندگی خواهیم کرد و یا سعی کنیم به نوعی به اون پشت کنیم اما انسان بیرونی ما تا ابد زنده نخواهد ماند و خدا میخواد ما این رو بفهمیم که تا ابد زنده نخواهیم ماند خدا میخواد که ما به فرم ارزشی او در بیاییم خدا میخواد انسان درونی ما رشد کنه و آماده مرحله ابدی بشه به این دلیل که عیسی گفته خوشا به حال ماتمیان چون که وقتی شما ماتم گیرید. ارزش‌های شما آسانتر به ارزش ارزش‌های خدا در میاد و اراده شما بیشتر در راستای اراده خدا قرار میگیره و انسان درونی شما شباهت بیشتری به او پیدا میکنه این چالشیه که امروز ما سیستم ارزشی خودمون رو با سیستم ارزشی عیسی مقایسه کنیم. چند نفر از ما ملاحظه کردیم که وقتی در ماتم بودیم برکت بیشتری یافتیم. ما معیارهای عیسی رو در این مورد و یا بسیاری موارد دیگه نداریم. اما اگر معیارهای عیسی رو و معیارهای خدا رو داشته باشیم خواهیم فهمید که چرا کتاب مقدس میگه وقتی در ماتم هستیم برکت خواهیم یافت این موضوع اصلی کتاب ایوبه کتاب ایوب داستان زندگی مرد بزرگیه یک مرد خدا، یک مرد روحانی خدا اجازه میده این مرد خدا ترس و روحانی رنج بکشه و به خاطر این رنج این مرد بزرگ خداشناس روحانی مرد بهتری میشه خدا از ابزار رنج استفاده میکنه تا یک مرد خوب رو به مرد بهتری تبدیل کنه. این جوهر پیام کتاب عیوب هست. ما امروز به پیغام کتاب عیوب نیاز داریم چون که امروز یک الهیاتی هست که شدیداً غیر کتاب مقدسیه. این الهیات به الهیات کامیابی معروف شده. الهیات کامیابی میگه خدا هرگز نمیخواد که قومش بیمار بشن. خدا نمیخواد که قومش رنج بکشن. خدا نمیخواد که قومش فقیر باشند. الهیات کامیابی میگه اگر شما با بیماری مزمن و یا فقر دائم زندگی میکنید، شما اصول پادشاهی خدا رو به جا نمیارید. اگر شما بیمار یا شخص فقیری باشید، نمیتونید یک شخص روحانی باشید. این مضحکه، دروغ، دروغی از اعماق جهنم. اگر جاهایی رو ببینید که پیروان فداکار مسیح به شدت فقیر و بیمار هستند، اون وقت میفهمید که این الهیات هیچ پایه و مبنایی نداره اگه شما تاریخ قوم خدا رو بدونید یا تاریخ ها رو یا مناطق انتشار قوم خدا رو در سراسر دنیای امروز بشناسید مضحکی که چنین چیزی بگید بسیاری از قوم فداکار خدا در رنجی و اس ناپذیر زندگی میکنند صرفا به خاطر اینکه به خدا ایمان دارند اگر به ایمان به عیسی مسیح اقرار نمی کردند می تونستن های زندگیشون را بالا ببرند اما چون به ایمانشون به عیسی مسیح پایبند هستن دوچار فقر سختی شدن، زندانی شدن و در رنج هستن چطور کسی میتونه به این انسان های خدا ترس بگه چون شما رنج میکشید پس روحانی نیستی ما به کتابی مثل کتاب عیوب نیاز داریم تا به ما دیدگاه های گرایانه کتاب مقدسی بده که وقتی قوم خدا در رنج هستند فکر نکنیم که اونها اشخاص روحانی نیستن ما به کتاب عیوب نیاز داریم که به ما نشون بده وقتی رنج میکشیم خدا ما رو به خاطر اینکه در رنج هستیم ترک نمیکنه ما به کتاب ایوب نیاز داریم که به ما دورنمایی از رنج رو بده وقتی کتاب ایوب رو میخونیم اگرچه کتاب ایوب یه کتاب شعره خواهیم دید که مانند کتاب استر کتاب ایوب هم میتونه موضوع نمایشنامه زیبایی باشه من دوست دارم که به کتاب ایوب هم به عنوان یک کتاب نمایشنامه‌ای عنوانی بدم. صحنه برگزاری این نمایشنامه سرزمین اوس هست که اونجا ما مردی بزرگ خداشناس و روحانی به نام ایوب رو میبینیم در پرده اول صحنه اول خدا با شیطان درباره این مرد بحث میکنه این قسمت از کتاب ایوب یکی از جاهایی از کتاب مقدس هست که ما اون رو پشت صحنه فرض میکنیم و بینشی از ذات شریر رو به شما ارائه میکنیم شیطان از کجا اومده؟ چرا امروز هم شیطان وجود داره مشکل شیطان قوم خدا را هزاران ساله که به سطوح ورده. ذات شیطان الهی دانان و فیلسوفان رو از ابتدای عالم سردرگم کرده این سؤال سختی برای جواب دادن هست. اینجا در پرده اول نمایش کتاب ایوب ما دیدگاه های بیشتری درباره جنگ بین نیکی و بدی به دست میاریم. گفته شده که شریر در شخص شیطان تجسم یافته و شیطان و خدا درباره ایوب گفتگو میکنند خدا به شیطان میگه آیا در بنده من ایوب تفکر کردی که مثل او در زمین نیست؟ ایوب از من میترسد. ایوب به من ایمان داره و از بدی اجتناب میکنه. ایوب نمونه یک مرد خوبه. آیا فکر نمی کنی که ایوب مرد پارسایی هست؟ شیطان پاسخ میده و انگیزه های ایوب رو برای خوب بودن به چالش میکشه. شیطان میگه آیا ایوب مجانن از خدا میترسه؟ تو گرد او و گرد خانه او و گرده همه اموال او به هر طرف حسار کشیدی تا من نتونم به او دسترسی پیدا کنم. من نمیتونم به او و به اموال او دسترسی پیدا کنم. چرا این همه به او برکت میدی؟ البته که او خوبه هر کس دیگه اگه برکات ایوب رو داشته باشه خوب میشه. و خدا این جواب حیرتنگیز رو میده. خدا به شیطان میگه بسیار خوب. من به تو نشون خواهم داد که او چقدر مرد خوبی هست. خدا به شیطان میگه اینک همه ی اموالش در دست تو هست لکن دست خود رو بر او دراز مکن. این چیز ترسناکی هست. ما میخونیم که در این مرحله ایوب هرچی که داره از دست میده. او خیلی ثروتمند بود. در متن کتاب نویسنده ثروت ایوب رو ذکر کرده بود. ایوب یک زن داشته که قابل اعتماد نبود. همینطور که ما بعدها میبینیم ایوب هفت پسر و سه دختر داشت. هزار هزار گوسفند، سه هزار شطور، یک هزار گاو پانصد الاغ و خادمین بیشماری داشت ایوب از نظر ثروت بزرگترین مرد مشرق زمین بود شیطان به خدا میگه که اگر ایوب داراییش رو از دست بده به خدا دشنام خواهد داد و زندگی روحانی و خلوصش رو ترک خواهد کرد. خدا به شیطان اجازه میده که تمام دارایی ایوب رو بگیره بعد در دنباله میخونیم که ایوب تمام داراییش از جمله ده فرزندش را از دست میده کتاب مقدس میگه رسولی نزد ایوب آمده گفت 'گاوان شیار میکردند و ماده الاغان نزد آنها می چریدند و سابیان بر آنها حمله آورده بردند و جوانان را به دم شمشیر كشتند و من به تنهایی رهایی یافتم تا تو را خبر دهم و او هنوز سخن میگفت که دیگری آمده و خبر بدتری داده گفت آتش خدا از آسمان افتاد و گله و جوانان را سوزانیده آنها را هلاک ساخت و من به تنهایی رهایی یافتم تا تو را خبر دهم و او هنوز سخن می گفت که دیگری آمده گفت کلدانیان سه فرقه شدند و بر شوتوران هجوم آورده آنها را بردن و جوانان را به دم شمشیر کشتند و من به تنهایی رهایی یافتم تا تو را خبر دهم و او هنوز سخن می گفت که دیگری آمده گفت پسران و دخترانت در خانه برادر بزرگ خود می و شراب می نوشیدند که اینک باد شدیدی از طرف بیابان آمده چهار گوشه خانه را زد و بر جوانان افتاد که مردند و من به تنهایی رهایی یافتم تا تو را خبر دهم. در این مرحله عیوب رو میبینیم که چقدر پریشان هست و کتاب مقدس میگه او جامعه خود را درید و سر خود را تراشید و به زمین افتاده سجده کرد و گفت بهرحنه از رحم مادر خود بیرون آمدم و بهرحنه به آنجا خواهم برگشت خداوند داد و خداوند گرفت و نام خداوند متبارک باد در این همه عیوب گناه نکرد و به خدا جهالت نسبت نداد. کنفسیوس میگه با دستهای بسته به این دنیا آمدیم و همه چیز میخواهیم و با دستان باز از این دنیا میریم و چیزی با خود نمیبریم. وقتی عیوب اینجا امتحان میشد او گفت وقتی به این دنیا آمدم دستانم باز بود. هر چیزی که در دستانم هست خدا در اون قرار داده. در تمام این مدت هم همه به او متعلق بوده و چون همه چیز مال او بوده هر چیزی که دلش بخواد میتونه بگیره. خدا همه فرزندانم رو گرفت. هر چیزی که داشتم گرفت، اما همه چیز مال او بود که گرفت. نام خداوند متبارک باد. او خدا رو پرستش کرد و امتحانش را به خوبی پشت سر گذاشت. از دست دادن دارایی ها برای عیوب مثل یک توطعه بود. بعضی از داراییهاش هاش رو با بلایای طبیعی از دست داد، مثل طوفان و گردباد و سائقه ای از آسمان که دست به دست هم داده و کار خدا رو تکمیل کرد. اگرچه ما میدونیم چون ما پشت صحنه را هم دیدیم این کارها کار خدا نبود اینها کار شیطان بود شیطان پشت سائقه بود شیطان پشت باد بود و شیطان بود که اون دشمنان را به طرف او هدایت کرد که خادمین او رو بکشند و گله او رو بدزدند. کتاب ایوب به ما بینشی از این واقعیت میده که اینها کارهای خدا نبودند ایوب امتحان اولش رو به خوبی پشت سر میذاره. صحنه دیگری در پرده اول هست در صحنه دوم پرده اول، باز هم خدا با شیطان در مورد ایوب بحث میکنه. خدا به شیطان میگه: حالا درباره بنده من ایوب چی فکر میکنی؟ آیا ایوب خوب از اوحتش بر نیومد؟ ایوب من رو به خطا مسئول ندونست. ایوب منو پرستید. شیطان جواب داد: بله، او خوب از اوحتش بر اومد، اما تو اجازه ندادی که من او رو لمس کنم. تو اون دومین حسار ایوب رو بر نداشتی؟ اون حسار دوم را هم بردار و بذار من به ایوب دست پیدا کنم او تو رو لعن و نفرین خواهد کرد. تنها دلیلی که ایوب خوبه تنها دلیلی که او روحانی هست اینه که چیزهای زیادی برای او باقی مونده. ایوب وقتی داراییهاش را از دست داد خوب تحمل کرد اما انسان حاضر هر چیزی رو به خاطر سلامتیش بده. سلامتی او رو بگیر و خواهی فهمید که او چه جور مردی هست. در این مرحله کتاب عیوب حقیقت وحشتناکی رو نشون میده الهیدانان به این اراده مجاز خدا میگن خدا به شیطان میگه اینک او در دست توست لکن جان او رو حفظ کن خدا به او میگه باشه این حسار رو هم بر میدارم اما فقط یک محدودیت داری نمیتونی جان او رو بگیری اما میتونی سخترین رنجی رو که یک انسان میتونه تحمل کنه به او تحمیل کنی این مفهوم ترسناک دیگری است چرا خدا به شیطان؟ این همه اجازه میده که ایوب رو شکنجه بده. شکنجه چیه؟ کسانی هستند که در این مهارت دارند که به قربانیهاشون انواع شکنجه ها رو بدن بدون اینکه که اونها رو بکشن. این دقیقا همون کاری بود که خدا به شیطان اجازه داد که با عیوب بکنه. نباید جان او رو بگیری. این تنها محدودیتی بود که خدا برای شیطان قائل شد. کتاب مقدس میگه پس شیطان از حضور خداوند بیرون رفته عیوب رو از کف پا تا کلش به دو سخت مبتلا ساخت این عجیبترین بیماری بود که یک نفر میتونست تحمل کنه بدون اینکه بمیره این بار ایوب مثل امتحان اولش خوب از عهده بر نیومد ایوب ناامید و دست پاچه هست. این جایی هست که نشون میده زن ایوب چندان قابل اعتماد نبود او به ایوب نگاه میکنه و میگه آیا تا به حال کاملیت خود را نگاه میداری خدا را ترک کن و بمیر این حقیقتا نصیحت فریبنده‌ای بود زن ایوب باید با او همراه میشد ایوب رو به زنش می کنه و از او سوالی میکنه کنه سؤالی که به اعتقاد من جوابش پیغام کل کتاب ایوب هست ایوب از زنش میپرسه از خدا چی انتظار داری؟ آیا باید همیشه چیزهای خوب از خدا دریافت کنی و چیزهای بد نباید بگیری؟ جان کلام ایوب این بود یک انسان خوب باید توقع داشته باشه از دست خدا چی دریافت کنه چون که او انسان خوبیه سوالات زیادی در کتاب ایوب پرسیده شده و این امیقترین سوالی هست که در اون کتاب میبینیم. این انتظار هست که کتاب ایوب جواب اون سوال رو به ما بده. ایوب مرد خوبیه. آیا ایوب باید فقط این توقع رو میداش که چیزهای خوب از دست خدا دریافت کنه؟ ایوب در بحبه این مشکلات دستهاش باز هست و این سوال رو میپرسه. آیا نیکویی رو از خدا بیابیم و بدی رو نیابیم؟ در این مرحله پرده پایین میره و پرده اول تموم میشه. من این پرده رو زمینه نام گذاشتم. پرده دوم رو مناظره میگیم. در پایان پرده اول گفته شده که ایوب سه تا دوست داره. اونها خبر رنج های ایوب رو میشنوند. اونها با همدیگه تصمیم میگیرن و نقشه‌ای میکشند. به محل اقامت ایوب سفر میکنند. وقتی وارد خانه ایوب میشن میبینند که رنج او ظاهر جسمانی او رو تا حدی که اونها نمیتونن ایوب رو بشناسند نواز کرد. اونها وقتی رنج های عظیم ایوب رو میبینن با اندوهی فراوان منتظر میمونند. هفت شبانه روز نزد ایوب می نشینند و چیزی نمیگهند. در سکوتی اندوهناک منتظر میمونند. بعدها ایوب به دوستانش میگه که سکوت آنها تسلی بخش کاری بود که اونها انجام دادند. تسلی دهندگان ایوب مثالی هستند از تسلی دهندگانی که هیچ تسلی نمی بعدها وقتی مطالعه کتاب ایوب رو ادامه میدیم خواهیم دید چرا دوستان ایوب وقتی وارد خانه ایوب میشن نمونه ای از تسلیدهندگان دهندگان هستند به این دلیل هست که گاهی مردم وقتی به شدت در رنج هستن شما لازم نیست که چیزی بگی گاهی مردم از من به عنوان یک شبان میپرسن شبان من میخوام شخصی رو که مشکلات غم داره ملاقات کنم باید به اونها چی بگم اونها فکر میکنند که باید کلمات جادویی باشه که بتونه مردم رو وقتی یک مصیبت رو تجربه میکنن تسلی بده شاید چیزهای خوب و مناسبی باشه که بتونیم بگیم اما مهمترین چیزی نیست که چی بگیم مهمترین چیزی اینه که اگر نگران زندگی کسی هستیم باید بریم و نزد اون شخص باشیم فقط وقتی اونها مصیبتی رو تجربه میکنن همراهشون باشیم یادم راجب مردی شنیدم که در بیمارستان روانی بود و صحبت نمیکرد اساسا به همین دلیل در بیمارستان روانی بود همه سعی می کردن او را به حرف بکشن و او نمیخواست حرف بزنه بالاخره یک دانشجو که دوره انترنی خودش رو میگذرون از این مرد در بیمارستان روانی دیدن کرد و تصمیم گرفت چیزی رو امتحان کنه او هر روز ساعت دو بعد از ظهر به اتاق این مرد میرفت و با او مینشست. او فهمید که این مرد چون با کسی صحبت نمیکنه باید خیلی تنها باشه و کسی هم با او حرف نمیزد جز اینکه سعی میکرد او رو به حرف بکشن خوب این دانشجو هر روز ساعت دو بعد از ظهر نزد این مرد می نشست. این کار حدود 8 هفته ادامه داشت او نشون داد که هر روز به اونجا خواهد رفت و پیش اون مرد خواهد نشست خواه او حرف بزنه یا نزنه اگر حرف میزد که چه بهتر اگرم حرف نمیزد بد نبود یه روز مرد شروع به صحبت کرد آشکارا چیزی که اون می خواست این بود که کسی بیاد و کنار او باشه این کاری بود که دوستان ایوب وقتی وارد خانه ای او شدند، انجام دادن. بعد از هفت شبان روز روزه و سکوت سکوت توسط ایوب شکسته میشه. او شبی را که در رحم قرار گرفت نفرین کرد. روزی را که در آن متولد شده بود نفرین کرد. اما آنطور که شیطان پیشگویی کرده بود خدا رو نفرین نکرد. وقتی حرفهای ایوب تمام شد، یکی از دوستانش که مردی به نام الیفاز بود در پاسخ به سخنان او صحبت میکنه بعد ایوب حرفای الیفاز رو رد میکنه و بعد از اون دوست دیگرش بلدت شروع به صحبت میکنه و ایوب حرفای او را هم رد میکنه و بعد دوست سوم سوفر شروع به صحبت میکنه و ایوب حرفای او را هم رد میکنه به این ترتیب هر کدوم از اونها سه بار صحبت میکنند اینها بر روی هم وسیع ترین بخش کتاب ایوب رو تشکیل میدن که بهش مناظره گفتیم دوستان ایوب مثل خودش مردان مسن و حکیمی بودند اونها مردان روحانی بودن و های تحصیل کرده ای بودند. آنها از گنجینه تجربیات عمیقی برخوردار بودند. اونها سعی میکردند به ایوب مسئله دشوار و رنجش رو باز کنند. وقتی شما این بخش از کتاب رو می میخونید، به یک کلمه توجه کنید. در پایان کتاب خدا چیزی درباره های الیفاز، بلدد و سوفر میگه. خدا به دوستان ایوب میگه شما در دو مورد اشتباه می‌کنید. چیزی که در مورد من گفتید اشتباه بود. و چیزی که در مورد بنده من ایوب گفتید هم اشتباه بود پس وقتی صحبت‌های این سه مرد رو می‌خونیم اون رو با این درک بخونید که اونها دیدگاه غلطی در مورد خدا و عیوب داشتند همه این داستان الهام شده است چون که بخشی از کتاب الهام شده از سوی خداست اما الزامن حقیقت نیستند وقتی کتاب مقدس حرف‌های شیطان رو نقل می‌کنه باید با این دیدگاه اون رو بخونیم که هر چیزی که شیطان میگه همیشه دروغه شیطان هرگز حقیقت رو نمیگه. شیطان وقتی به هوا گفت اگر از این میوه بخورید نخواهید مرد، دروغ میگفت چون که اونها مردن. اون جمله شیطان که در کتاب مقدس ذکر شده و یک کلام الهامی هست، حقیقت نداره. چون که شیطان اون رو اظهار کرده. اینجا در کتاب ایوب شما صحبتهای تن از دوستان ایوب رو دارید. اما یادتون باشه که خدا به اونها گفت که حرفهای اونها اشتباه است. اونها وقتی در مورد خدا حرف میزدند اشتباه میکردند و وقتی در مورد ایوب هم حرف میزدند اشتباه میکردند وقتی صحبتهای اونها رو میخونید ای از اون برای خودتون به عنوان آیه زندگیتون انتخاب نکنید اگرچه اون آیات بخشی از کتاب الهامی هستند اما در اون آیات حقیقتی نیست جز در پایان داستان در پایان کتاب ایوب خدا از ایوب تعریف میکنه خدا صحبتهای بیشتری از دوستان ایوب میکنه و میگه ایوب وقتی درباره من صحبت می کرد حقیقت رو می گفتفت. بنابراین وقتی ایوب در مورد خدا حرف زده میتونید به با اون باور کنید چون که خدا گفته اون حقیقت داره. وقتی به این بخش مهم از کتاب ایوب می رسید این مد نظر داشته باشید. بخشی که بهش مناظره گفتیم. این بخش وسیع ترین بخش از کتاب ایوب هست و اکثرا مردم در موقع خوندن این کتاب با این بخش مشکل صحبت های سه دوست عیوب تا اعماق میره، و خیلی در اونجا میمونه و هیچ نتیجه ای نمیده احتمالاً به این دلیل که مردم وقتی این صحبت ها رو میخونن دل سرد میشن به صحبت های ایوب بچسبید به صحبت الیهو به دقت تمرکز کنید صحبت الیهو به عنوان سومین پرده این نمایش هست. من این پرده رو راه حل نام گذاشتم چون که راه حل بحث بقرنج عیوب و دوستانش در پرده سوم با صحبت الیهو اعلام میشه وقتی که هر سپردر رو در این نمایشنامه میخونید که بهش کتاب ایوب میگیم، یادتون باشه که دنبال پیغام خدا برای دلهای دردمند از جمله قلب خودتون باشید. چون که دیر یا زود همه ما دردمند خواهیم شد. به این دلیلی که خدا کتاب ایوب رو به ما داده. دوستان خدا وضعیت شما رو میدونه و براش مهمه. کلام اون به ما میگه؟ اون ما رو دعوت میکنه تا نگرانی هامون رو به اون بسپریم چون که اون نگران ما هست ضمن مطالعه کتاب مقدس دعای ما اینه که در ایمانتون قوی بشین و در شناخت خداوندمون رشد کنین و محبت بیقید و شرط اون و رحمت، ادالت و فیض اون رو درک کنید ضمن مطالعه کتاب ایوب یاد میگیریم که حتی وقتی ما در رنج و درد هستیم اون مراقب ما هست ترتیبی بدین که در جلسه آینده همراه ما باشید تا مطالب بیشتری از این مرد بزرگ خدا و کتاب ایوب رو یاد بگیریم.